دوستان امروز میخواهم درباره مفهوم میان در پرهنگ ایران و رابطه اش با سکولاریته صحبت کنم این مفهوم میان برای همه شنوندگان یک مفهوم انتظائی به نظر می نسد. این از که خوب است نشان بدهم که در زیر این ایرانی ایرانیها چه می فهمیدن و درست مفهومی است که که با مسائل جهانی کنونی سر و کار دارد البته به مفهوم دقیق میان در این سخنرانی آشنا خواهیم شد ولی این اشاره روشن می کند که ما با چه مسائلی سر و کار داریم در میان در میان خود انسان حالا ما در میان و مفهوم کلیش رو میگذاریم کنار در میان انسان شکم است که این در اشکام بوده از اش و ببینید واجه عشر درست سره همین شکم آمد و شکم را البته هم به زهدان می هم به معده و که در دور برشه و این مسئله پس میان اشان شکم یک, م... یک زنی که حامره دارد میگن شکم دارست این یکم شکم جای جواریدن قصاص و این خیلی برای ایرانی ها و برای مردم و دنیا خیلی مهم است این مسئله این است که در همین شکم در گزیده های زادوش پرم میبینیم که در اینجا خرداد و مرداد امرتاد در اینجا در اینجا آتش اپرودن خرداد خدای خوشباشی خدای سعادت خدای امید ایران است و امرداد زیستی است پس بنابراین این دو خدایی که جفت همیشه پیدایش پیدا می اینها خدایان بودن که سعادت رو در نشان می دادن. البته در الهیات زردوشت اینها خیلی متعالی و ترانسندنتال فراز پایه شدند. ولی ایرانی ها از این چیزی دیگری می دادن ها همون خرد و خوراق و زندگی در جهان رو می خواهد بنابراین یکی این میان خواستم این مسئله که البته در قرنه که گذشت در صده که گذشت عملا از مارکس طرح شد و این را او فقط راسیونالیزه کرد در تمام جوانه بشه و اون چیزی که بعدش به عنوان زیر کم مشهور شده است که اون هم میان است درست اون در فرهنگ ایران یکی همون اسم دین را دارد، دعینا معنای اصلیش شنی مادینگی، مادینگی انسان. ولی این مفهوم در آن واحد معنای بینش رو هم دارد. چون که دعینا به معنای بینش زاییده از انسان. چون که این اولین پی پیدایش از ذهدان خودش علامت روشنی بوده است. این است که اون هم زاییدن است. آوردن کودک به دا... گیتیز هم اینی که نمایش بینش و روشنش پس بنابراین به همین علت هم اصلا در زبان در پرهنگ ایران به خود به خود دین میگفتن این دعینا این یعنی خود این ببینید چه معنای عالی میگردن از این وسط برای چی, برای چی خود بود انسان از اونچه چه می آفریند در آن چه می آفریند خودش هست اون بینشی که از انسان زایده می شود اون نماد خودش هست خود این روند بینش از زایدن یعنی بینش از خود روند آفریدن از خودست خیلی مفهوم مهم است. انسان اون چیزی نیست که در از دیگری به خودش آویزان کند یاد بگیرد. بلکه انسان اوکیی که از خودش می زاید بینشی که از خودش می هل. پس پس ببینید دین با میان انسان کار سر و کار داشت و این دو تا این دو مسئله به هم پیوند دارد. بینش و جایش در فرهنگ ایران اینها اصلا دو دانا پذیر بودند حالا این مسئله رو در اون در یک جنبهش فرو ترک کرد ببینید پس مسائل بزرگی بودند مسائل صده بیستم همین دو مسئله بود که با میان انسان سرکار حالا مسائل دیگرش که با صده تازه ما صده بیستی اکوم کار دارن درست دو میان دیگر است یکی جگر است جرگ در کردی. این گرگه که ما میگوییم در افغانها میگویم اینها معنی شنی وسط که عربی کبد و همین که بعد یک واجهه چنان که دید یک واژه پارسیس یعنی به هم اون چی که به هم میچسباند به هم پیون میدن کبد هنوز هست میدانی این چیزهایی که به هم پیون میدن و جگر درست از دید آنها کلمه مثلا کلمه را که ترک ها به کار میبرن همین درست یعنی اون چیزی که به هم میپیوند کلمه باغ هم معنیش یک دسته گیاه را یا یک دسته درختان را باغ میگوید حالا این پس یکی جگر است که این در فرهنگ ایران بهمن بوده است که میان میان در میان جان جان در میان جان مینوی مینو هست و این اصل کیهان شما که یعنی این اصل آپریننده اصل سنتر در میان هر جانی هست در میان هر چی زنده در میان هر انسانی این اصل آفریننده که اصل سنتز، اصل ترکیب کننده است پس بنابراین این،, این دوتا که یکی هم دل بود که اسمش اسم سرهدوارش ریم من است یعنی مینوی نی ریم معنای نی داشته است ما بوده معنای زشتش را به کار میبرم به معنای چرک زخم و اینها ریم میگن ولی ریم به کرگدان ریما چون چونکه این شاخ روی بینیش این اسمش این ش... اه... کرگدن به این اسم اصلا مشهور است به این شاق روی دنیا. روی این است که به او ریمان میگوین و در جاهای دیگر هم میبینیم که این ریم در اصل معنای نی داشت ریم... و دل اسمش ریمان بود یعنی مینوی نی که این اسم سیمور بوده است پس بنابراین میبینیم وحمن دل و جگر اصله بینش شمرده میشدن چون که عصر سنتز علت علت اینکه این دو تا عصر بینش شمرده میشدن چون که ایرانی ها اساسا فکر نمی کردن که انسان با کله با سر میاندیشد بلکه میاندیشتن که انسان با کل وجودش میاندیشد انسان با سرش تنها نمیاندیشد بلکه این ایده بعدش اومد بلکه انسان با کل وجودش است و کل گرانه کل وجود اون که تمام وجود جمع می شود گرانگاش کجاست میان انسانه پس بنابراین این مفهوم مقصود من این بود که متوجه بشویم که مسئله میان فوق العاده مهم بوده و انجاز که می بینیم که فرهنگ ایران این اصل آفرینندگی را در میان خود انسان می در میان هر جانی طبعا این خود بودن این معنا این ارکه ارکه بهمن ارکه هست. ارکه یعنی چیزی که تمام دنیا ازش پیدا میکنه این ارکه در میان خود انسان در جگر انسان پس اینکه اصل پیدایش جان است گوشوربان از پیدایش بهمن است پیدایش ملموس و گرفتنی بهمن پس بنابراین فرهنگ ایران مسئله زندگی درگیتی را درست جانشین مسئله حقیقت میکنند حالا این است که ما اینجا از این اشاره کوتاه میرویم رویم از سر روی خود مفهوم میان چون که این میان نه تنها در میان انسان در نظر گرفته می شد بلکه یک مفهوم انتدائی بود که در کل کیهان در همه چیز میانی می اندیشیدن. میان همه جا بود چرا چون که جهانی رو که فرهنگ ایران داشت یک جهان بود همه به هم پیوسته بودند این بود که همشه میان دو چیز میان بود یعنی اصل میان به معنای نه به معنای ما به یعنی اصل سنتز بود یعنی اصل پیوستگی نقش بنیادی حکومت در فرهنگ ایران نقش بنیادی حکومت در فرهنگ ایران درست همین بهمن بازی میکرد. یعنی چی؟ یعنی اصل میان. چرا؟ اصل میان مذاهب، میان ادیان، میان اقوام، میان احزاب باید یک نیروی سنتز باشد. یک نیروی پیوندهنده باشد. تا پیروان مذاهب و ادیان گوناگون و همچنین افراد اقوام گوناگون و طرفداران احزاب گوناگون بتوانند با همدیگر آفریننده بشوند. نبینید این دو چیز هست. در موازات هم کنار هم بتوانند همدیگر را تحمل کنند این از این اجتماع ساخته نمی شود. از این وحدت سیاسی وحدت اجتماعی به وجود می بلکه این میان این اصل میان این بهمن باید باشد که در میان این اهداب و مذاهب و ادیان و اقوام ایجاد چی بکند هم آفرینی میکنند هم روشی بکنند. اینا با هم بطمئن بی آفرینن. با هم بطمئن راه بروند با هم بطمئن حرکت کنند هم روشی این هم روشی چرا که خواهیم دید معنی اصلیش در پهلوی یعنی جابدانگی دوام کسی پیدا میکند اجتماع پیدا میکند مواقعی که با همدیگر دیگر بتوانند حرکت کنند این خیلی اصل مهمی. یکی هم همپرسی با هم بتوانند روش های زندگی رو قانون زندگی رو با هم دیگر بجویند پرسیدن در زبان پرسی معنای سوال کردن نداره، معنای جستجو کردن دارد و معنای نگران زندگی بودن دارد ببینید این اصل میان باید این اصلی است که میان این ادیان و مذاهب و اقوام ایجاد وحدت تازه ای کند که هم در هم آفرینی نمودار می در هم روشی با هم حرکت کردن با هم جستجو کردن با هم قوانین رو جستن با هم نظام رو جستن این مفهوم میان کلیجگی فرهنگ ایران حدیده است که از منش بهمنی ایجاد می شود رو گفتیم این عرکه این بهمن ازهای گوناگونی داشته هست ببینید تصویر بهمن در فرهنگ ایران با تصویر بهمن در الهیات زردوشتی فرق دارد این یک روایتیست از فرهنگ ایران ولی فرهنگ ایران منش بهمنی رو چیزی دیگر می دانست. این حالا ما یک اندازه با اسم همین بهمن آشنا بشیم چون که این بهمن یا اسمی که داشت یکی حخامن بود حخامن که امروزه این اسم طور زشتی خیلی مشهور شده هست. این حخامن و حخامن اساساً این مفهوم این مفهوم را به همین علت به خودشون دادن که نه نه, نه تنها برای خاطر اینکه نیاکانشون هخامن اسمش بوده است، بلکه احقامن اسم بهمن بوده است. یعنی ما یک حکومتی هستیم بر پایه بهمن. حخا،, حخا همون که کلمه ارکاس. و یکی دیگر از اسامیش اندیمن یا هندیمن بوده است. یکیام ثغدی‌ها و خارزمی‌ها و این‌ها هومن می‌گفتن. ما با بسیج کردن این مفهوم است که میتوانیم می جامعه سیاسی و فرهنگی بزرگی را با هم آفرینند. هست این مفهوم میان را که ما الان طرح کرده ایم کردن اون مایه پیدایش جامعه سیاسی و فرهنگی بسیار بزرگ خواهد شد. مقصود از ایجاد یک حکومت بین المذاهب و بین الادیان و بین الا و بین الاحزاب ایجاد دامنه یا میدانی است یا درست همین میان است که انسان ها در آن با هم هم کنند هم با هم بجویند با هم سابقا حقیقت رو میجستن نه زندگی رو با هم بجوین شیوه‌ی با هم زندگی را این است که فرهنگ ایران اساساً به دنبال چنین میانی میان احضاب ادیان و احوام احضاب بوده است و درست همین را هم میخواهد با همپرسی که را که امروز بیشتر دیالوگ میگوند ولی همپرسی خیلی همپرسی خیلی جرفتر از مفهوم دیالوگ هست. همچنین خیلی جذاب‌تر از مفهوم گفتگو هست که تازگی ها متداول شده است. اجتماع اس این امروز استراح گفتگو رو زیاد به کار می‌برند ولی این اصطلاح نابساط. مسئله بنیادی اجتماع فقط گفتگو کردن با هم نیست. با ما ما می‌تونیم بدون ساعت ها با هم گفتگو بکنیم. با این گفتگوها مسائل حل نمی شود. بلکه با هم همجستجو کردن شیوه های همزیستی نگران زندگی همدیگر بودن است. ما باید نگران باشیم دل و پس باشیم اگر نه بشینیم ساعت ها با هم گفتگو بکنیم قصه بگیم یا از این بحث های سیاسی متفاوت را بکنیم برای هفته منافع خود ما اینا که به جایی نمی رسن. باید همپرسی بکنیم. با همجستن شیوه های زندگی پربریم. این اصل اجتماع ساز است. این اصل اجتماع ساز را ما با همین مغوله پیوند طرح می نیاز بدان که دو انسان یک به یک حقیقت و آموزه ایمان داشته باشند تا با هم یه گانه شباند. این، نه این نیاز مسئله حقیقت را پیش می که درد سرهایش را خواهیم بود این حقیقت های منپسر بفر همیشه سبب پاریدیش سبب جنگ و دعوا می شود بلکه هنگامی ها انسان یا چند انسان با هم بجوید و با هم همپرسی کنند اونگاه آنها با هم یگانه می شود. اون موقع وحدت سیاسی و وحدت اجتماعی به وجود همپرسی هم یعنی با هم شیوه زندگی کردن را بجویند با هم بفهمند که چه قوانینی چه حکومتی ضروری است که بتوانند با هم همکاری کنند بتوانند با هم هماندیشی کنند و هم بتوانند با هم همروشی بکنند پس پرسیدن در پرهنگ ایران این خیلی مهم است. پرسیدن رو نباید با سوال کردن یکی گرفت این مسئله امروزه همه پرسی ها هم این یک واژه بی‌معنای شده است چون که دقیقاً به معنای فرهنگی ایرانی فرهنگ ایرانی این واژه کسی نگاه نمی‌کنه. پرسیدن در فرهنگ ایران سوال کردن نیست. چه؟ دو برآیند فوق العاده مهم دارند. یکی جستجو و طجو کردن. نه باز سوال کردم. جستجو کردن و جستجو کردن طجوهیدم نه ایمان به یک حقیقت، نه. با هم جستجو کردن یک بینش. یکی هم نگران هم همدیگر بود. نگرانی؟ نگران یک دیگر بودن. تا نگران همدیگر نباشیم، جستجو کردن و پجوهیدن چرا چیزی داره؟ زندگی کردن در یک اجتماع نگران همدیگر بودن است. که رفراندوم، این بوده خیلی مطرح است و مسئله ضروری روز است به هیچ روی تنها سؤال کردن از ملت نمیباشد که ما یک سوالی از ملت بکنیم که آیا این بیان سوال بکنیم این با این سوال مثل... نپرسیدیم چیزی این همپرسی نیست یکی که خود این واژه اساسا غلط ترجمه شده است چون که refer در لاتین رفر یعنی مراجعه کردن به ملت مراجعه کردن به که کسی مراجعه میکنه؟ به مرجعیت یعنی تنها مرجعیت در در این مسائل بنیادی ترین مسائل ایران که حکومت و نظام هم این تنها مرجعیت ملت هست پس بنابراین رفراندوم معنا به با کلمه از همه سوال کردن خاتمه پیدا نمیکنه. در اینجا ما یک مرجعیت می برای اساسی ترین مسائل. دموکراسی اصلا در انتخابات و اینها این نیست که ما یک کسی را فقط انتخاب کنیم. نه. مسئله مرجع بودن انسان ها. خرد انسان هاست. این مرجع بودن مهم است. نه اینه که سوال کردن. شما میتونید سوال بکنید و فردا فراموش کنید که اه اه چه جوابی دادن با این سوال کردن حکومت رو در دست میگیرید. میروید مجلس نخیر، این مسئله این است که این مرجعیت باقی میماند و از این گسته معنای دیگر این چیست معنا است که کسی دیگری چیزی دیگری مرجعیت ندارد وقتی بزرگترین این مسائل را ما از ملت، از خردهای مردم میپرسیم، پس معنیش چی میشهد؟ معنیش اینه که هیچ کتاب مقدسی، هیچ شریعت، هیچ آخوندی و کشیشی و موبدی به هیچ از اینها مراجعه نمیشد. و این مسئله خیلی مهم است. در گفتگوها، در دیالو، در همپرسی، آیات به عنوان معیار برای درستی اندیشه من یا اندیشه شما آورده نمیشه اینها گواه نمی دهد که یک اندیشه صحیح هست. است که ترجمه رفراندوم به همه پرسی یک ترجمه ناقص هست. در رفراندوم سوالی خیلی مختصر کوتاه با یک الترناتیب خیلی روشن برای همه ملت وضع می شود که معمولا این یک آلترناتیو بسیار ساده و روشن است. مسئله بنیادی این نیست. بلکه مسئله بنیادی رجوع کردن به همپرسی همیشگی ملت با هم به نام تنها مرجعیت از همه ملت یک بار یک سوال را پرسیدن تا همپرسی همیشگی ملت با هم هزاران فرسک از هم پاتله دارد با همجستن و با هم آزمودن ملت این همبستگی تازه و زنده و نیرومن ایجاد میکند اینها ملت را همیشه به هم پیبند میدهند ببینید میان همپرسی و اینها میان از همپرسی یعنی آمستان. این همپرسی این با همجستن در حرکت همیشه در حر... خرد حرکت میکند همیشه خرد میاندیشند اینجا مساله ایمان و حقیقت نیست خرد همیشه میاندیشند با همجستن با هم آزمودن نیاز به خرد دارد این در این سبب چی می شود؟ سبب دوام می شود سبب بقای اجتماع ملت می شود چنانچه در داستان مرتق و تیر اطار که سی تو مرغ در جستجوی با هم میابن چی میابند؟ که خودشان با هم سی مرگ. خودشان با هم شاهن خودشان با هم حکومت با هم جستن یا هم پرسی کسرت را تغییر به وحدت در هماهنگی آهنگی میکنن کسره ببینید این فرهنگ ایرانی همه این ساخت رو با هم می کنن. یکی کسرت یکی هماهنگی یکی وحدت اینها نه توحید نه کسره هماهنگی وحدت یعنی با هم حرکت کردن کسره با هم آفریدن ملت با هم کار کردن با هم اندیشیدن هم پرسی کردن با هم این چی می ایجاد وحدت می این ستا را بون این ستا بدون اینکه یکی از دیگری جدا بشهد اساس فرهنگ ایران مسئله نیست این نیست که از همه یک سؤال را یک بار بپرسن و سپس خط روی آزادی پرسش بکشن بلکه مسئله این است که همه ملت همیشه با هم بجویند و میازمندین چی همیشه با هم ب... تا خود شیوه زندگی با هم را در درازای زمان بیابند در هر موقعی در هر خطری باید همه ملت با هم همپرسی بکنند در این همپرسی مداوم در این همروشی مداوم به مسئله حرکت خیلی مهمد ایمان به یک چیز ایستانیست بلکه این خرد همیشه حرکت میکند کار میکند این در این همپرسی مداوم خود حکومت یا تمررک می شود هم پرسی ملت یعنی با هم جستن با هم آپریدم با هم عمل کردن ایجاد حاکمیت ملت, ملت و دوام ملت رو میکنه دوام این فوق العاده مهم دوان جاابداندی در پرنگران که گفتیم هم روشی در به تعبی اصلا معناش یعنی جاابدانه در حرکت با هم جاوه دانگی ایجاد می شود ببینید در فرهنگ ایران نمی که شما وقتی که اطاعت از عوامر الهی بکنید جاوید میشید شود اصلا چنین حرف رو نمی زند این فرهنگ ایران نمی بلکه در عشق به هم دیگر ایجاد دوام می شود ایجاد جاوه دانگی می شود این دوتا مفهوم کامران مختلف هست. حتی خدایان در هم در هم در همکاری با هم در هم آفرینی با هم جاوید میشد. به جاودانگی یک کسی تنهایی نمیرسد. همه جامعه باید با هم شاد باشد تا اون جامعه جاوید بشه. اگر از همه به گونه‌ای بپرسند که حاکمیت حقیقی ملت در هم پرسی که در تأسیس قانون پیدایش مییابد، و کلام و ماسک و تعریف کرده اون پرسیدن شبه پرسش است. این،, این پرسش این سوال کردن هست. این اصلا پرسیدن نیست پرسیدن سوال نیست پرسیدن جستجو کردن است. این است که با درک این مقوله میان در فرهنگ ایران ما میتوانیم به فرهنگ سیاسی ایران پی ببریم حالا این میان در فرهنگ ایران چه معنایی داشته است میان چی بود؟ است؟ میان در فرهنگ ایران به اصل آمیزنده و آفریننده میگوید. که ما اون روز امروز عادت کردیم اصل آمیزنده رو اصل پیبنده را سنتز میگوید. در فرهنگ ایران هر انسانی هر جانی میانی دارد. این درست مخاله بهمن است. جان در میان جان. یعنی اصل آفریننده و آمیزنده و سنتز کننده در میان هر جان هست. در میان هر انسان. این نه تنها میان به این معنی هست میان چیزها هم میان اقوام هم. میان اهداف ها باز این اصل و بودن هر, هر دو چیزی یک میان داشت میان در درون آنجان یا انسان اصل آفریننده و بقای جان و انسان است ببینید ما میخواییم با دقت با این مفهوم آشنا بشیم ببینید مفهوم میان ما یک معانی دیگری پیدا کرد باید ببینیم که آنها این مقعوله را در با این مقعوله چه میاندیشدن؟ تا بفهمیم فرهنگ ایران چیست. اگر نه ما افکار خودمون را از اصطلاح میان ببریم اونجا از نه میفهمیم که آنها چی گفتن نه از آنها میتوانیم بهرهی بگیریم. این است که در میان جان هر جانی جان بود. بولی زم... حالا این مسئله شو این مسئله خیلی حساس میشه. نه اینه که در میان هر جانی اصل آفریننده بود پس بنابراین اونها عقیده داشتن که همه جهان را همه جهان و جان را همه جهان می آفرینند خدای شخصی نبود اصلا مفهوم خدای شخصی نبود همه جهان را همه جهان می آفرینند چون که در وسط هر چیزی این اصل آفریننده و سنتز کننده هست و مفهوم خداشون این بود که مجموعه این عصهای آفریننده در جانها با هم این خداست اصلا این مفهوم ما را که از الله یهو و در خارج دنیا را خرق می کند با خواستش هنچی چیزی نبود میدونید اینا تا این را ما در ذهن نداشته باشیم فرهنگ ایران را نمیفهمیم. بن زمان، بن جان و بون کیهان اینا اسمشان ارکه بود بون زمان بون جان بون کیهان در میان انسان هست یعنی چی؟ اگر به طور فلسفی بگویم یعنی کل در میان فرد هست یه خیلی مسئله مهمی است. در هر فردی کل هست کل جهان کل زمان کل کیهان هست این معنیش این به زبان کان یعنی هر کسی قایت خودش هست هر انسانی قایت هست انسان رو به عنوان ابزار و عالت نمی نمی‌شود. نه تنها انسان، حیوان رو به عنوان alat و ابزار. طبیعت رو هیچ کدوم رو به عنوان alat و ابزار نمی‌شود. این است که در هر فردی کل هست. یعنی بون زمان، بون کیهان، بون جان در هر انسانی هست. از این بون هست که کل کل انسان، کل جهان آفرینش می‌شود. حالا این مثله که در هر فردی کل این ارزش انسان را به کلی عوض می کند چون که در جامعه وقتی فرد،, فرد انسان جز جامعه هست این کل هست که جز را مشخص جز نقشی بازی نمی کند فردیت ندارد موقعی که این ایده که در فرهنگ ایران پیدای شد بعدش در این اندیشه روشت کرد فرد جز نیست، بلکه در فرد کل هست، چون که معنا، معنای هر جزی از کل مشخص میشه. در اینجا کل در خود انسان است این بون، این فترت انسان کل بونیست که جهان از روی میروید پس بنابراین در فرد, در فرد انسان اصل معنا این نیاز ندارد که یک آموزه، یک ایدئولوژی، یک شریعتی به او معنا بدهد، بلکه او اصل زاینده معناست این خیلی اهمیت دارد چون که امروزه استدار میکنند انسان نیاز به معنا دارد و معنیش است که یک آموزه، یک شریعتی اسلامی، یهودیتی باید به انسان معنا بدهد مصیحیتی باید به معنا این فرهنگ ایران به کل برزده این بود. چون که این اصل معنا را کل را این بونی که کل تیهان را تدیب می آورد. این در خود انسان بود. در خود هر انسانی بود. این است که یک ایده بزرگی راجع به فردیت در ایران پیدا شد. حالا در هر فردی این کل چی بود؟ این خرد بهمنی بود. این آسان خرد بود. این مینوی خرد بود این خرد سامنده بود اینا استهای مختلف این خرد بودن خرد سامنده این سامان یعنی حکومت یعنی نظم سامان معنای سامانیان یعنی اهل حکومت مردان حکومتی خرد سامنده ببینید ایر ایر فرهنگ ایران استوار بود که در درون انسان خرد سامونده هست تو انسان سیاسی را تعریف میده این ایرانی میگفت در انسان اصل اندیشنده قانون و حکومت و نظام هست این خرد سامانده. و سامان اساسا در مقدار ادبیه میشود دید که سامان اصاسا معناش نی بوده است. برای این خاطر حقامنشی ها و در زبان پهلوی به حکومت کردن به رهبری کردن میگفتن نیدن یعنی چی؟ یعنی با نی نواختن با کشش نی کردن منظم کردن جمع کردن به همین علت یعنی خردی که بدون لور بدون تهدید، بدون کاربورد وحشت انگیزی بدون شکنجه میتواند مردم را بکشد به یک در انسان در هر انسانی یک هنچی خردی بود خرد سامنده است که قانون و نظم و حکومت را می آفرینند و به استراح فرهنگ ایرانی جامعه را می آراه. در فرهنگ ایرانی سیاست نمی گوندن سیاست یعنی شکنج دادن یعنی با زور یک امری رو قالب ساختن یعنی عثاب دادن اصلا سیاست این معنی رو دارد ایرانی به سیاست به اون چیزی را که پولیتیک در اروپا می میگفت آراستن جهان آرایی کشور آرایی یعنی این آراش دو تا معنی دارد یکی معنای زیبا ساختن است یکی معنای نقد دادن است علتش این است که در فرهنگ ایران نقد و زیبایی دو روی یک سکه بودن چیزی ناز میده که زیبا بکنه زیبا و ناز باید با هم باشد نه اینکه یک نازویی باشد که درش زیبایی نباشد چون که خشم تهدید ترساندن اینها زشت میکنه نه اصلا واجیه زشت فارسی از اینجا میآید این است که و وح... این وحشتناکی که اساس اکرام هست این در فرهنگ ایران در میبینید در همون خرد سامانده که در هر جانی هست در هر انسانی هست و این نظام میدهد این زد وحشت انگیزیست زد تهدید است زد کاربرد قهر و زور است در یک واژه در همین فطرت انسان کل اندیشه های قرآن و یهودیت و اینها را من نفی میکند برای کند در اینکه این اصلا یک فرهنگ دیگر است این همون اندیشه است که وقتی که این خرد سامنزه در میان انسان هست این هموننده چیست که میخواد میخواهد نه. سکولاریته چیز دیگر اینه میگوید می که این اصل آراینده جهان اصل زیب جهان این اصل زمان در خود انسان هست بنابر فرهنگ ایران هر دو چیزی هر دو فردی هر دو جمعی، هر دو اندیشه ای هر دو بینش میانی دارند. این بیمیان نیستن. میان یعنی چیزی که این دوتا رو به هم میپیوندد. میانشان اصل پی و سنتز آن دو چیز و دو فرد و دو جمع و دو اندیشه و دو بینش هست. این اندیشه خیلی مهم است. هر جا دو چیز، دو جان، دو جمع، دو اندیشه هست. یک اصل سنتز میان آنها نیست چون در فرهنگ ایران جهان و زندگی به هم پیوسته این بنا این خیلی معنای مهم داره این معناش است که دو جهان پاره از هم وجود نداره یعنی آخرت نیست آسمان به زمین پیوند دارد. این به معنای آن است که خدا و آفریدگان پاره از هم نیستن این نه به تشبیه بلکه خدا از انسان میروید انسان از خدا میروید هم گوهرن هم سرشتن این خالق نیست که مخلوقی با امرش بیافرینند که جدا الگووهره او باشه این پیوستگی ببینید محکوم پیوستگی به مکوم میان به کجا ها میرسد خیلی مهم است در فرهنگ ایران خدا و انسان میان این دو تا میان است یعنی چی؟ یعنی اصل سمتس هست یعنی نمی تواند دو چیز باشه این حالا حالا به اینجا میرسیم که این یک نکته ایش که البسه ما در فرهنگ ایران مطالعه میکنیم ولی این فکر در ادیان ابراهیمی کاملاً گسترش پیدا کرده و خاص است و این اساس اساس اجتماعات دینی این ادیان ابراهیمیه حالا این, این ایده بزرگی که در فرهنگ ایران پیدا شد که میان هر دو چیز یک میان هست که این رو می‌گفتن ستا یک را اسمش در فرهنگ ایران سگانه یگانه بود که سقرغفت میگفتن، سخان میگفتن. این اندیشه در الهیات زردشتی از این انحراف پیدا کرد. در اینجا یک جهانبینی تازه پیدا شد که درست بر ضد فرهنگ ایران بود در همین الهیات زردشت. در اینجا رابطه احورامزده و اهریمن رابطه است که بین این دوتا دیگر اون چیزی را که ما میان گفتیم وجود نداره میان میان آنها به معنای فرهنگ ایران نیست اهورامزدا طبق الهیات در دوشتی در روشنی و فراز پایه هست که معناش این در ترانسندنس هست برینی هست و احریمن در تاریکی و در جرف حالا و این دو از هم بریده و گسته این توهیگی به معنای این است که به جای میان توهیگی هست یعنی خلای هست که از این نمی شود پلی بین این دو زد این امکان آمیزش بین این دو را به طور کلی قد میکنند اصلا نه احورام از احریمن هیچ نوع سنتزی نمیتوانند با هم داشته. این این را در فرهنگ ایران می گفتن کرانمند می گفتن و اهریمند کرانمند هست. که ما امروز کرانه را به معنای مثلا به معنای ساحل دریا یا که مرد می گویم فرانچی کرانه ایران هست. یا کرانه دریا هست. ولی ولی در هنوز در کردی معنای اصلی آن که گسستن و پاره کردن است باقی مونده. هست کرانمند یعنی پاره شده یعنی گسسته شده پس ببین این نشان میدهد که در موقعی در فرهنگ ایران این دوتا به هم پیدوند داشتند احر... احورامزا و میان احورامزا و احریمن توهیگی یعنی خلاع است به ما آنها به گونه ای از هم گسسته و بریدن که هیچکونه امکان آمیزش با هم را ندارند. اصلا از آمیزش به هم دیگر پرهیز میکنند. و در این متون می شود دید که تباهی تباهکاری عریمن در آن است که می خواهد و می کوشد که بیامیزد فراموش نشود که این واجه آمیختن یکی از واضحای فاجه آمیز این متون هست برای این آمیختن در فرهنگ ایرانی ریشه واژه مهر است ولی در این, در این متون این آمیختن بیشتر معنای شهوت دارد اهورا او می با تمام زمین با تمام گیتی بیا میزد زد او را با تمام نیرو از آمیختن با خود باز میدارد. حالا این احریمن وقت پنتامینون این اینها در روایات در الهیات زربشه معنای دیگری دارد در فرهنگ ایران معنای دیگر در فرهنگ ایران اونجا گفتیم که به هم پیبستر بریدن ندارد خلب وجود ندارد تو یگی نداره در فرهنگ سی مرغی، وارونه الهیات زردشتی اهریمن که انگرامینو باشد و سپنتامینو با هم میامیختن چرا با هم میامیختن تا گردونه آفرینش را با هم بکشند. اینها معمولا به این شکل نمودار نموده میشوند که این دو تا گاو یا دو تا اسب هستن که این گردونه آفرینش را با هم میکشند وقتی که با هم روشی میکنن هم تازیح میکنن با هم می با هم می در این هم جهان را میآورند این به کلی داشت با اون از اندیشه که اایات زداشتی برای بیان پیدایش دنیا می گفت. اول درست این انگرامینیو و سپنتامینو که فرم اهورامت گرفته بود اینها را اصلا می بورید. در فرهنگ ایران معنای اصل بدی و تباهی و ددارکامگی را نداشت که بعدش در الهیات زردوستی پیدا کرد. بدون آمیزش انگرامینیو و سپنتامینو آفرینش نبود. این دو تا باید با هم بیامیزن. باید این گردونه آفرینش را بکشن تا جنیا پیدا بشوند. این بود که اون چی این دوتا یک میان داشتن. دوتا گاب، دوتا از میانشون چیست؟ یک یوگ است. این یوگ دوتا گاب را جفت را یک یوگ وسطشون هست که خیش را می کشن. را میکشند. این یوگ در فارسی هم از کلمه همون جفت میآید. این درست همون واجه یوگاه هست در زبان سانسکریت که به معنای وسال و آمیزش هست و جای این واژه البته واجه های مختلف میک داشتن یکی مثلا واژه سیم از سیم, سیم. یکی واژه سنگ اصنگ سنگ حضرش اصنگ هست اتن. که همون اصن خرد معنای خرد پیونده هر این دو را این یوک این دنیرو انگرامینو و سپندمین رو به هم و به گردون دنی آفرید میداد. از این رو سه اصل در فرهنگ ایران بنا بودن. بودند. یکی انگرامینو، یکی سپندمینو، یکی و هو که این دوتا رو به هم پیمان میداد و سنتز میداد. این میانه اصل میانی بود. و و هو اصل میانو، اصل سنتز رو بود. جهان آفرینشو جهان و جهان جان سنتز دو اصل انگرامینو و سپنتامینو بودن و طبعا در میان هر آفریگهی که محصول این سنتز بود اون و هومن یعنی بهمن اون حقامن اون اندیمن در کار بود کاربرد این کاربرد واجی میان میان احور و اهریمن به کلی است ما اصلا نمیتوانیم به را رو برای بکار داریم. چون که ما... میان همون در کردی به معنای مایه است. یعنی چی یه مایه خمیر مایه مایه پنی روما این چیزی است که تخمیر میکنند و دو چیز را طوری به هم ت... در تخمیر با هم یکی میکنند. بگونه ای که مایه در آنها ناپدید میگردند. یعنی اصل سیوم ناپدید میشود. اصلا و از اون دو فقط یک چیز چون چیز تحول یافته به جا می مانند. این است که ببینید مفهوم میان را نمی شود به واسطه ترجمه کرد واسطه فرض کنند پیغمبر رسول واسطه خالق و مخلوق است خالق و انسان ها. این, این واجه را در فرنگ ایران با واجه میان نمی توانید بپوشانید این یکی نیست وقتی که میان مایست اگر میان خدا و انسان این خدا و انسان رو با هم یکی می کند. اصلا نیاز وقتی به واسطه ندارد پس بنابرای ببینید اصل واسطه این است که در وسط میماند. این سه که از یک و دو یک میسازد. سازد این اصلا با مفهوم ببینید من این, این به کلی با مفهوم توحید و شرک اسلام اونها قلعه می شود با هم قطی کرد اینها چیزهای مختلف است. امروز میگوین توحید نه این به این روی توحید میکنن این مسئله در فرهنگ ایران مسئله عشق است می میان یک چیزیست یک است که از دو چیز یک چیز میسازد. یعنی کسرت را هماهنگ میکند. نه این میان دو چیز اون دو چیز را با هم تخمیل میکنن و با هم میان میزان و از اون دو یک چیز تازه میشوند این از فرهنگ ایران در دوره سی مرغی ستا یک دایی یاد احتراز و احتراز, و احتراز و بود البته این ترینیته بعدش به مسیحیت آمد ولی این محفومش فرق دارد دقیقا اینها را از هم جدا کرد این ستا یک داییی که سخانی و سه قرقفی هم نامیده می شود این اهم این فراموش شد و بعدش اون صنویت دوتایی دردشتگری در ایران غالب شد که اغلب شرقشناسان در قرب این دوالیسم ایرانی را رو به رخ ما میکشند در صورتی که فرهنگ ایران ستایکتایی بوده است و دوالیسم نبوده است و این ستایکتایی بیان یک جهان واحدی است که هیچ گونه بریدگی در آن نیست. یک چیز است و همه چیزها میان دارند این معناش این همه دو چیزها یک میان دارن. این معناش این که جهان به هم تصفیده است. چون که همه چیز به هم دیگر صرفز میکنه. خیلی متحرك است. تفکر رو در نظر بگیرید که نه یک چیز یک نواخت مایه، یک یکنواخت هموژن نیست و نیست. بلکه هر جا دو چیز است یک میان دارد که این نیروی سنتز دارد. پس بنابراین دنیا همش به هم پیوسته نمی شود. این است که جامعه از نکات خیلی مهمی که ما باید در نظر بگیریم. چرا این جامعه در ادبیات ایران وقت بودار می یکی از اسمهای جامعه جمع که واقعیتش را حفظ کرده است و در لغتنامه می تواند پیدا کنید سگانه است. درست؟ همین چیز است. در جامعه سه تا مایه بود. این را بحث جداگانه می‌کنیم که این بحثی که اصل پیوند را در جهان نشان می‌دهد. از این روز که در فرهنگ ایران فقط یک جهان وجود داشت. چون میان هر دو چیزی که چاره گفتیم یک اصل پیوند هند یافت میشه که از آن دو یک می‌ساز. این اندیشه بیان آن بود که دو جهان وجود ندارد و خدا و غدیتی همگوهران. و این خداست که گیتی می شود ببینید این ما اصلا نیاد به سکولاریته نداریم این خداست که گیتی می شود در گیتی اصلا ناپیدا می شود این گیتی اصلا در فرهنگ ایرانی گیتی معنای دنیا را به معنای که ما کار می به اون معنا ندارد چون که گیتی مجموعه جانها هم هست یعنی همه این جانها و هم آمیخته شدن و خدا جانان با آمدن الهیات زردشتی سنبیت یعنی دو دوتاگری دوگانگی پیدای شد حالا این سنبیت چجور پیدا شد؟ چجور از گاتا این سنبیت پیدا شد؟ این یک بست است. ولی الهیات زردشتی از زردشت این ایده را به شکل دو تاگری در در قالب قصوره های ایران بیان کرد و از اون روز که حفظ که انگرامینو اهریمن شد به معنای امروزه و عملا انگرامینو و سپندامینو دو قطب متضاد شدن که همون سپندامینو این همانی با اهورامزا پیدا کرد و به کلی از او بریده شد آیا این بحث کهی مفصل است که چجور این شروع، چجور این ایجاد شد و چجور جهان بینی و فرهنگ ایران را به کلی از هم پاشید. با الهیات زاردشی دنیا یعنی گیتی جایگاه جنگ و نبرد و طبعا جایگاه درد و عذاب و مردمان به کردار به عنوان سربازان و ارتشیان اهورامزدا آفریده شده اهورامزده انسانها را به انوان سربازان خودش می که برای او بجنگن اصلا برای این کار به قایت وجودیشون است که بجنگن برای اهورامزده اونها برای جنگیدن آفریده می شود. این اندیشه عملا تخم همون اندیشه جهاد مقدس در اسلام که سپس به اسلام از راه و بیراهه به ارس است. سه تا یک تا بیان اصل اشق و بود چون اصل میان اون دو چیز را با هم میامیخید و از اون دو یک چیز میشه خوب توجه بشه میان نه میانگین آن دو چیز بود نه وسط این چیز و اون چیز این قطب و اون قطب نه این نبود نه اصل انتقال دهنده از یکی به دیگری بود یعنی فرستاده از خدا به بندگان به مخلوقات نه رسول بود بلکه اصل سنتز و آمیزش هر دو چیز بود این داشت واسطه نبود میانگین هم نبود در الهیات این مسئله رو من برای نمونه اون حقیقت منحصر فرد. چون که در این تحولات خوب این پدیدار می شود چستگیری شود و این سبب می شود که ما مف... مفهوم این حقیقت منحصر به فرد و حقیقت ایستا حقیقت استاتیک را استاتیک را خوب بفهمیم چون که در اینجا در فرهنگ ایران نفوذ کرده است این ایده و خیلی مخرب بوده است در الهیات زردوشتی دیده می شود که احریمن و احورامزده به هیچ روی نیروی آمیزندگی با هم ندارم فقط در دنیا یعنی در گیتی در زمان کرانمند یعنی زمان پاره یعنی درنگ خواده میگن اینها فقط با هم قاطی میشن با هم این آفریدگانشون با هم قاطی و مخلوط رو در هم میشن ولی با هم نمی آمیزن یعنی اون چیزی که اهریمنیس، اهریمنی میمونه و اون چیزی که اهورا مزدائیست بلکه که در زمان کرامه یعنی چی؟ یعنی در تاریخ و زمان گذر همیشه با هم گلاویز و در ستیز و نبردم به چون دیده می شود که سنویت یعنی با الهیات دردوشتی ما جهان نبرد و پیکار و کشمکش داشتیم درست؟ در فرهنگ سیمرقی این میان جهشنگاه بود حالا شد شد رهزنگاه یعنی با سنویت با این پارگی این پارگی که شد این اصل پارگی در هر شکلی که آمد بلافاصل این پارگی جای درد است جای نورد است جای پیکار است جای کنفلیکت است در اسلام هم سنویت به شکل دیگری هست ببینید این معنی نیست که سنویت در اینجا اینجا در در دوشی در اینجا بود ولی در اسلام سنویت فرم دیگری به خودش می گیرد. یعنی این پارگی و هر جا این پارگی هست خانقاه در همه گسترده می شود در اونجا نمیماند. عرفان درست بر ضد این سنویت اسلامی میجنگید در دیر واژه توحید عرفان همون مفهوم ایرانی را داشت یعنی چی میگفت جهان و خدا با هم همگوهرا در اسلام الله گوهری جداگانه از دنیا و مخلوقات دارد. پاره خالق است او مخلوق است. این خالقیت انتقال پیدا نمی کند به مخلوق. اون اصالت انتقال پیدا نمی کند به آفریده. این اینست که این سنویت سنویت الله یا خالق و مخلوق این نقطه درست همون نقشی را بازی میکنن که در اونجا پارگی اح... احرامزا و احرامزا در اینجا در فرهنگ ایران آفریننده، چون که میزاد چون میتراوه چون میروید خواه نخواه با آفریده برابر است یعنی چی؟ یعنی همون اصالت رو که آفریده دارد که آفریننده دارد آفریده دارد این که این برابری یا آفریننده و آفریده جزء گوهر فرهنگ ایران اون چه در خدا هست در انسان هم هست حالا این که رابطه بین خدا و انسان رابطه حاکمیت و تابعیت نیست ولی در اسلام او خالق است و انسان مخلوق است درست این صنویت چون اینا ها از هم پاره هستند و هم گوهر ایجاب راه، رابطه حاکمیت الله و تابعیت مخلوقات و انسان از الله را میکنه و اون گروهی که حاضر به تابعیت نیستن درست این دو جامعه بریده از هم ایجاد شود که خواهنا دنیا پارگی گسستگی از هم می. این میشوند دارالهر اون میشوند دارالسلام یا امت کف و امت ایمان که درست همین باقی اندیشه سانوییت در دنیاست این هم نوع دیگر سانوییت است که که در زیر تو، کلمه توحید الله پوشیده است همیشه دما توحید زده می شود. ولی در واقع سانوییت است چون الله و مخلوقات دو چیز فرق دارند ولی اینی که رسول به نبی بفرستد و اینها اینا همه واسطه انسان همگوهری نیست بریز خدا بریز، خدا نمیزاید نزاهده شده اینها همه درست هر جا میبینید عرامت پارگی انسان از الله هست اینست که بر میگردیم به موضوع خودمون آفریدگان احورامزده و آفریدگان احریمه هر دوتا آف می آفرینن فقط به قایت جنگیدن با هم اینا با هم در گیتی قاتیپاتی هستن گمیخته هستن ولی با هم آمیختنی نیستن و به جای آمیختن با هم می یعنی در جنگ در اوج قاتی شدگی با هم نیروی آمیختن با هم را ندارن و نیروی تحول به هم دیگر را هم ندارن به عبارت فرهنگ ایران که چنانکه که گفتیم بیمیان هستند. من در اینجا میخواستم یک نقطه بگویم که رابطه ما را با آثاری که از گدشتگان ما، از نیاکان ما چه در پرم دینی است در موتون پحلوی و عوستاوین ها مانده است چه در, در باقی مانده هایی که از زیر خاک در میآید یا در تاریخ مانده ما این سرندیشه های ایرانی را یک نکته، مثل نکته هایی می گیریم یک به قول فرانسوی ها اپرسو می گیریم که ما را در لحظه کوتا, کوتا، یک قلقلق فکری میدهد یا ناخونکی به روان ما میزند و یا لحظهی به ما حالی میبخشد که در یک چشم به هم زدن ناپدید میشه بارونه چنین برخوردی با این سرندیشه ها اگر دقت کنیم این سرندیشه ها فلی هستند به گستری پهناور از معنا که نیاز به تمام کردن دارند این ما بایستی این ها را همطور دست نخورده باقی نگذاریم و به عنوان اینه که چیزهای درد گرفته و چیزهای متأخر هستن چیزهایی که خرافه هستن رها کنیم این اصطلاحات اونها را باید فهمید بایستی با با دقت یک کابشکر یک هفار این تک تک ها را گیراورد و به هم پیون داد و با هم ترکیب کرد و اگر ما این کار را بکنیم میبینیم چه افکار گستردهای و چه مایه برای فلسفه ایران برای حقوق ایران برای افکار حکومتی سیاسی پیدا میکنیم این سرندیشه ها, ها و تخمه های کاشده نشده هستند. که در انبار فرهنگ ما به امید کشاورزی نوی نشستند که آنها را بکارد و بپرورد این هاشیه را گفتم تا اینی که ما این کتاب ها را مثل داستان نخانیم بلکه لایه های آنها را تشخیص بدیم شاهنامه، بندهش، اینها لایه های مختلف دارد مثل لایه های زمینجناسی این لایه ها را باید هم شناخت یک واژه میبینید در چند لایه قرار میگیره یک معنی نداره در هر دوری یک معنای دیگر داشته مثلا در دوره فرض کنید در ماهیت دو... در, در دشتی مزدا، اهورا رو میگن ثروت مزدا رو میگن دانا ولی در دوره هفامنشی ها اهورا آورا بوده یعنی ابر چون که افسونندگی جوان نشان جوانمردی بوده مزدا یعنی ماه اندیشنده ماه آفریننده و ماه نه که تخم تو، بوده از مجموعه تخم ها این است که مجموعه رو، اصل روشنی بوده است فنابراین اصل بینایی بوده است اصلا یکی از نام های ماه بینائی است در قضاقش پس فنابراین احورامزده احورامزده برای حقامنشی ها معنای این رو داشته است که مجموعه تخم ها با ابر که سرچشمه آبست با هم آمیخته میشن و از این دنیای جان پیدا می کن. یعنی عشق تق و آب آمیختن آب و تق این رو به شروط هم پرسید آمیختگی رو این از این آمیختگی چی ایجاد می شود؟ از این آمیختگی جهان ایجاد میشه. یعنی از اصل عشق جهان آفرده می شود ببینید از اهورا مزدا در جاهای مختلف معنا معناهای مختلف تش این بایستی. این واژه‌ها را نه در یک دوره مثلا سروش مثلا شهریور یا خرداد و امورداد اینها در روایت زرتشتی یک معنایی دارد در فرهنگ ایران یک معنایی دارد در میترائیسم یک معنای دیگه داشته در مانیگری معنای دیگر دارد، اینها را هر کدوم ماری ویژه‌ی خودشون رو به ما میدن این است که یک معنا ندارن که ما خیال کنیم فقط با یک معنا باید این متون رو فهمید. این است که در شاهنامه این افکار با هم قاطی شده است. در بندهش هم این این علامت این نیست که این تکس به درده می خورن. علامت این است که ما باید در خواندن انتقادی بخونیم و بتوانیم این لایه ها را اطلاق جدا بکنیم.